این داستان بچه های تلائی. در روزگاران بسیار قدیم در کلبه کوچیک ماهیگیری با همسرش زندگی میکرد اونا غیر از ماهی که ماهیگیر سید میکرد چیزی برای خوردن نداشتند یکی از روزها همین که ماهیگیر تورش رو به آب انداخت یه ماهی طلایی داخل اون پرید ماهیگیر حیرت زده ماهی رو نگاه میکرد که ماهی به حرف زدن اومد و اون بیشتر متعجب شد. ماهی گفت گوش کن ماهی گیر اگه منو تو آب بندازی کلبه محقر تو به یه قصر تبدیل میکنم. ماهی گیر جواب داد من آه در بساط ندارم قصر به چه درد من میخوره؟ ماهی تلایی گفت خیالت راحت باشه. اگه گنجه های قصر رو باز کنی، هر قدر قضا دلت بخواد در اون پیدا می کنی. ماهی گیر گفت، حالا که این حرف و زدی، طبق خاستت عمل می کنم. ولی ماهی اضافه کرد، این کار یه شرطی داره. نباید به کسی بگی چطور صاحب این قصر رو ثروت شدی. اگر حتی کلمه به زبون بیاری، بلافاصله فاصله همه زندگیت بر باد میره. ماهیگیر بعد از شنیدن این حرفها، ماهی و به آب انداخت و راهی خونه شد. ولی به جای کلبه محقرش قصری با دیوارای بلند دید. با حیرت نگاهی به قصر انداخت و وارد تالار اون شد. اونجا همسرش رو دید که با لباسهای مجلل روی مبل گرون قیمتی نشسته. همسرش خیلی ذق زده به نظر میآمد و با خوشحالی از ماهگیر پرسید چی شد یهو همه چیزی رو رو شد من خیلی خوشحالم شوهر جواب داد منم خیلی خوشحالم خیلی هم گرسنم حالا چیزی بده که تو این قصر زیبا با هم بخوریم زن جواب داد ما که چیزی نداریم نمیدونم در سوراخ های این خونه بزرگ چیزی پیدا میشه یا نه ماهگیر جواب داد خیالت راحت باشه، اون بزرگ بزرگو که میبینی برو درشو باز کن. وقتی در گنجه رو باز کردند، دیدند انبای غذاهایی که برای یک جشن و مهمونی بزرگ لازمه در اون وجود داره، نون و گوشت و سبزی و کیک و انبای میوه ها. زن با صدای بلند گفت، کور مگه از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا؟ اون دوتا نشستن و با خیال راحت هرچی دلشون میخواست خوردن قضاها که تموم شد زن پرسید این همه رفاه و ثروت یهو از کجا پیدا شد؟ مرد جواب داد بهتره در این مورد سوال نکنی چون جرأت جواب دادن ندارم کافی یک کلمه بگم تا همه چیز برباد بره زن گفت خیلی خوب حاله که نباید چیزی سوال کنم دیگه اصرار نمی کنم. اما در واقع اینطور نبود. شب و روز اونقدر اصرار کرد تا از این جریان سر در بیاره که جون شوهرشو به لبش رسوند و دست آخر مجبور شد رازو برملا کنه و گفت این همه مال و ثروت به خاطر اینه که یه ماهی تلایی شگفتانگیز توی تور من افتاد ولی من اونو تو آب رها کردم. هنوز حرفش تموم نشده بود که ناگهان اون قصر با با گنجه های محو محف شد و دوباره کلبه ماهیگیر جای اونو گرفت. ماهیگیر مجبور شد دوباره زندگی فقیرانش رو از سر بگیره. ولی بخت با اون یار بود و اون دوباره همون ماهی طلایی رو پیدا کرد. ماهی گفت اگه بازم منو به آب بندازی، دوباره برات قصری با گنجههای پر از قضا بنا میکنم اما این بار یادت باشه که به کسی نگین آسایش و رفاه از کجا اومده. در غیر این صورت همه چیزو از دست می دی. ماهی در حالی که ماهی رو به آب منداخت گفت، این راز و پیش خودم نگه می دوباره همون قصر با شکوح بود و اون گنجههای پر از قضا. همسر ماهیگیرم اینکه دوباره به خوشی و رفاه رسیده بود خیلی خوشحال بود. ولی کنجکاوی امان اونو بریده بود و طاقتش رو تاق کرده بود. بعد از دو روز شروع کرد به پرسجو کردن که این همه ثروت و راحتی از کجا اومده. شوهر لب بسته بود و چیزی نمی گفت. ولی با اصرار شبانه روزی زن امانش بریده شد و با عصبانیت راز رو فاش کرد. بیدرنگ، قصر، با همه چیزهای گرانبهاش نابود شد و دوباره همون آش بود و همون کاسه. ماهیگیر گفت دیدی چه گلی به آب دادی؟ باز باید تعمه تلخ گرسنگی رو بچشیم. زن گفت دلم نمیخواد ثروتی داشته باشم که ندونم از کجا اومده. برای من آروم و قرار نمیذاره. روز از نو روزی از نو. ماهیگیر شروع کرد به ماهیگیری کردن. اما انگار خوش اقبالی ماهیگیر گل کرده بود چون همون ماهی برای سومین بار به تورش افتاد ماهی این بار گفت نیست اینکه هر کاری بکنم از چنگ تو خلاص نمیشم بهتر منو به خونت ببری و دو تکه کنی تکه ها رو, رو روی زمین بکار اون وقت اونقدر طلا به چنگ میاری که برای تمام عمر بینیاز باشی ماهیگیر ماهی رو به خونه برد و همون کاریو که گفته بود کرد. اندکی بعد از تکه های ماهی دفن شده در خاک دوتا گل سوسن روید. چندان طولی نکشید که همسر ماهیگیر دو فرزند به دنیا آورد. اون دوتا درست مثل کره هایی که اسبشون زائیده بود طلایی بودند. بچه ها روز به روز اندام تر و بلند قد تر می شدند. گلهای سوسن و کرعصبها هم با اونها رشت میکردند. یکی از روزها بچه ها پیش والدینشون اومدن و گفتند اجازه میدین سوار اسبامون بشیم و به سیر و سیاحت دنیا بریم. پدر و مادر با اندوه جواب دادن ما چطور میتونیم دوریتون رو تحمل کنیم؟ فکر و خیال مریضی و گرسنگی شما ما رو دیوونه میکنه. اونا گفتند اون دوتا گل سوسن که توی خونه هستند از حال و روز ما به شما خبر میدند اگر اونها تازه و با تراوت باشند ما سالم و تندرستیم اگر گلها پژمرده مرده بشند یعنی مریض شدیم و اگر بیفتند یعنی مردیم به این ترتیب پدر و مادر اجازه دادند تا فرزنداشون به سفر برن اون دوتا بعد از مدتی راه رفتن به ای رسیدند که اده زیادی در اون اقامت داشتند مردانی که در مسافرخونه بودند با دیدن آدمهای طلایی شروع کردند به مسخره بازی و دست انداختن اونا یکی از برادرها وقتی دید که مسخرهش میکنن و سر به سرش میذارن و شکلک در میارن پشیمون شد و به خونه برگشت ولی برادر دیگه به راهش ادامه داد و رفت و رفت تا به جنگل بزرگی رسید پیش از اینکه وارد جنگل بشه چند جن نفری اون دورور بودن نزدش اومدن و گفتن بهتر وارد جنگل نشی. چون جنگل پر از دزده. همین که تو رو ببینند، حمله میکنن و دار و ندار تو می برند. به خصوص که ببینند تو به طلایی هستین، لابوت هر دوتون رو نیست می کنند. جوان ترسی به خودش راه نداد و گفت، به هر حال باید از این جنگل عبور کنم. پسر جوان پوست خرسی تهیه کرد و خودشو اسبشو با پوست خرس پوشوند. و با اطمینان وارد جنگل شدند هنوز راه زیادی نرفته بودند که از بین درختها صدای خشخشی به گوشش رسید و بعد صدای آدمایی که با هم صحبت می کردند یکی از اونا گفت آهان خودشه صدای دیگری گفت نه بابا ولش کن اون غیر از پوست خرس که چیزی نداره آدم گداگشنه و گشنه و که گذرش به این طرف ها افتاده به درد ما نمیخوره» به این ترتیب پسر طلایی بدون اینکه صدمه‌ای ببینه از وسط جنگل عبور کرد در طول سفرش وارد شهری شد و دختر جوانی رو دید که بسیار زیبا بود به نظرش اومد تو دنیا از اون زیباتر پیدا نمیشه خیلی از دختر خوشش اومده بود اونقدر که جلو رفت و گفت حاضری همسر من بشی دختر از شنیدن این سوال خوشحال شد و فوری جواب داد معلومه که همسرت میشم تا آخر عمرم بهت وفادار میمونم. طولی نکشید که مراسم عروسی اون دو برگزار شد. اونا همراه با مهموناشون سرگرم شادی و پایکوبی بودند که پدر عروس از مسافرت برگشت. وقتی فهمید دخترش ازدواج کرده، حیرت زده شد و پرسید داماد کجاست؟ وقتی داماد دامادو بهش نشون دادن، هنوز پوست خرس به داشت با دیدن اون پدر دختر از کوره در رفت و فریاد زد من نمیذارم دخترم زن کسی بشه که پوست خرس به تن میکنه. بعد بهش حمله کرد تا اونو بکشه. ولی عروس جلوی اونو گرفت و به پدرش گفت اون شوهر منه من دوستش دارم با تمام وجودم میخوام باهاش زندگی کنم. با حرفای عروس خشم پدر فروکش کرد. هرچند ته دلش ناراحت و ناراضی بود. حتی از ناراحتی تمام شب خوابش نبرد. شبانه به طرف اتاق داماد رفت و از لای در نگاه کرد و دید داماد مرد نجیبیه و چهره طلایی داره و پوست خرس هم کنار اون روی زمین افتاده. پدر عروس به اتاقش برگشت و با خودش گفت چه خوب شد که خشم خودم و فرو نشوندم و جنایتی مرتکب نشدم. صبح روز بعد داماد به همسرش گفت که شب گذشته خواب دیده به شکار رفته و آهوی زیبایی را به دام انداخته. برای همین باید اون روز به شکار بره. همسرش از شنیدن این حرف ناراحت شد و گفت تو رو خدا نرو ممکنه بلایی سرت بیاد. اما جوان در جواب گفت هر طور که هست باید برم. راه افتاد و راهی جنگل شد. هنوز خیلی نرفته بود که ناگهان چشمش به همون آهوی افتاد که توی خواب دیده بود با تفنگش حیوانو نشونه گرفت ولی آهو به سرعت برق از اونجا دور شد جوان از بین شاخ و برگا اونو تعقیب کرد و تمام روز بدون اینکه احساس خستگی بکنه همچنان دنبالش میدوید بالاخره شب رسید و حیوان از نظر ناپدید شد مرد طلایی دوروبرش رو نگاه کرد و همون نزدیکیات چشمش به خونه کوچیکی افتاد که پیرزنی جادوگر در اون زندگی میکرد. البته مرد طلایی خبر نداشت که پیرزن جادوگره. اون در اون خونه رو زد. پیرزن بیرون اومد و پرسید این وقت شب وسط جنگل دنبال چی میگردی؟ جوان از پیرزن پرسید آهویی رو ندیدی که از اینجا عبور کنه؟ زن جواب داد آره اونا آهور خوب میشناسم. وقتی پیرزن داشت صحبت میکرد، کرد طول سگی از خونه بیرون اومد و شروع کرد به پارس کردن مرد طلایی داد زد ساکت سگ ولگرد اگه آروم نگیری میکشمت جادوگر با شنیدن این حرف از کوره در رفت و فریاد زد چی گفتی؟ می سگمو بکشی؟ الان خدمتت میرسم. رسم جوان در یک چشم به هم زدن سنگ شد حالا بشنوید از عروس که بیهوده چشم به راه داماد بود و با خودش فکر میکرد لابد بلایی سرش اومده بیخودی اینقدر دلم شور نمیزد همون شب که برادر جوان کنار گل سوسن طلایی در خونه ایستاده بود دید شاخه اونها ناگهان پلاسید و خمیده شد اون از ته دل آهی کشید و گفت باید اتفاق بدی برای برادرم افتاده باشه باید نزد اون برم شاید بتونم اونو نجات بدم. پدرش گفت نه همینجا بمون. اگه هر دوی شما از بین برین اون وقت من چی کار کنم؟ ولی پسر جوون به پدرش گفت من باید برم و به هر قیمتی شده برادرمو نجات بدم. من باید برم و به هر قیمتی شده برادرمو نجات بدم. بعد سوار اسب شد و راه افتاد. بعد از مدت کوتاهی به همون جنگل رسید که برادرش در اون سنگ شده بود. پیرزن جادوگر که اونو از دور دید از خونش بیرون اومد و خواست صداش کنه و از برادرش نشونی غلطی بهش بده. ولی مرد جوان بهش نزدیک نشد. با تفنگ اونو نشونه گرفت و با لحنی تهدیدآمیز گفت اگه همین الان برادرمو به شکل اولش برنگردونی نگردونی تو رو میکشم. پیر زن که میدید هوا پسه و زندگیش در خطر افتاده با بیمیلی به طرف سنگی رفت که نزدیک در خونه بود و روی سنگ دست کشید. پسر طلایی مثل اول شد و کنار برادرش ایستاد. دوتا برادر از دیدن همدیگه خوشحال شدن و همدیگه رو در آغوش گرفتن و قرق بوسه کردند. سوار بر اسب از جنگل بیرون اومدن و بعد از هم جدا شدند. یکی به سوی عروس خودش رفت و دیگری به نزد پدر و مادرش برگشت. پدر پسرش پسرشو دید و گفت وقتی برادر تو از مخمسه نجات دادی ما فهمیدیم چون گل سوسن طلایی از پلاسیدگی در اومد و دوباره شکوفه زد. از اون به بعد همه اونها با خوشی و رضایت تا آخر عمر زندگی کردند.